جادوی بیش از اندازه اکنون به راستی جادو به ارل آمده بود به ارلی که زمانی در حسرت جادو آه کشیده بود کبوترخانه و کاهدان بالای استبل پر از جن بود جاده ها مملو از مسخره بازی بود و شب هنگام مدت ها پس از توقف آمد و رفت اجسام روشنی در خیابان بالا و پایین می پریدند چون اشباح شبانه خلنگزار دوست داشتند در راستای آبروها برقصند و گرد های نرم برکه های اردک ها و بر سیاه سبز خزهای روییده رویده بر روی کهن سال ترین خانه بسازند. و دیگر هیچ چیز در آن روستای قدیمی همچون گذشته نبود. و در میان تمامی این موجودات جادویی نیمه جادویی خون اوریون که به هنگام زیستن در میان آدمیان زمینی، و هر روز شنیدن صحبت‌های این جهانی خفته بود از خواب برخاست و اندیشه‌های دیرزمانی خفته را در مغزش بیدار کرد و اینک شیپورهای سرزمین پریان که اغلب به هنگام غروب صدای نباخته شدنشان را می‌شنید معنایی در خود داشتند و نیرومندتر به صدا در می آمدند، گویی نزدیکتر بودند مردم روستا که فرمانروایشان را هر روز تماشا می کردند، می دیدند که چشمهایش به سوی سرزمین پریان برگشته است. می دیدند تمامی مسائل مهم زمینی را نادیده می و شب هنگام روشنایی های غریب و وراجی های جنها فرا می رسید. وحشتی بر ایرل سایه انداخته بود. در این هنگام شورا دوباره تشکیل شد. دوازده مرد ریش خاکستری هیجان زده، که پس از پایان گرفتن کارشان به هنگام غروب به خانه نارل آمده بودند و تمام غروب با جادوی تازه آمده از سرزمین پریان مرموز شده بود هر کدام از آنها هنگامی که از خانه گرمش به سوی کارگاه نارل دریده بود روشنایی های در حال جهیش را دیده یا وراجی صداهایی را شنیده بود که از آن هیچ سرزمین رستگاری نبود و هیکل‌هایی سرگردان را دیده بودند که هیچ شباهتی به موجودات زمینی نداشتند و ترسیده بودند همه موجودات آن سوی مرز سرزمین پریان به این سو خزیده باشند تا به دیدار جنها بیایند. در شورایشان آهسته سخن می گفتند. همه یکی یک داستانها را می اینکه این که بچه ها و اینکه که زنها دوباره همان شیوه‌های های را می‌خواهند. و همچنان که ساخن می گفتند از میان پنجره به گردنه ها خیره شده بودند، حیران از اینکه دیگر چه خواهد آمد؟ و اوت گفت، بیایید به سراغ فرمان روا اوریون برویم همان گونه که به سراغ پدر در اتاق بلند سرخش می رفتیم. بیایید بگوییم چه اندازه دلمان جادو می خواست و بگوییم اینک به اندازه کافی جادو داریم و دیگر نگذاریم به دنبال جادوگری و چیزهای پنهان از انسان برود؟ با دقت ایستاده در میان همسایگان حاموشش گوش داد: آیا صدای اجنه بود که صدای او را تقلید میکردند؟ و یا تنها پژوااک بود که میتوانست بگوید؟ و تقریبا ناگهان شب پیرامونشان دوباره در سکوت فرو رفت و ترل گفت: نه؟ برای این کار بسیار دیر شده است ترل یک روز غروب فرمانروایشان را دیده بود که تنها و بی حرکت روی تپه ها ایستاده بود و به صدایی از جانب سرزمین پریان گوش می داد و چشمهایش را به شرق دوخته بود و هیچ صدایی نمی آمد. هیچ آوایی شنیده نمی شد. اما اوریون ایستاده بود و توسط چیزهایی ما شنوایی شنوائی میرایان خانده می شد. تریل گفت اکنون بسیار دیر است و همه از همین می ترسیدند و گوهی که آهسته برخاست و کنار میز ایستاد و جنها همچون خفاشها در کبوتر خانهشان وراجی می کردند و اشباه روشن خلنگزار سوسو می زدند و اشباه در تاریکی رفت و آمد می کردند. گاه به گاه صدای تاب تاپ پاهایشان به گوش دوازده نفری میرسید که در اتاق درونی نشسته بودند و گوهیک گفت ما آرزوی جادوی اندکی داشتیم و تندبادی بادی از سر و صدا از جنها به گوش رسید سپس مدتی به صحبت درباره این پرداختند که در زمانهای قدیم هنگامی که پدر بزرگ اوریان فرمان روای ایر بود چقدر آرزوی جادو داشتند اما اینک همگوهیک نقشه ای در سر داشت گفت اگر نمی توانیم فرمان من اوریون را از چشم دوختن به سرزمین پریان باز بداریم بهتر است همه اعضای شورا با هم به بالای تپه و به سراغ زیراندریل برویم و مشکل من را برای او مطرح کنیم و از اوتلس می در برابر جادوی بیش از اندازه بخواهیم و با شنیدن نام زیراندریل دوازده مرد دوباره دلگرم شدند چون می دانستند جادوی او شگرفتر از جادوی اشباه روشن است و می دانستند هیچ جن یا شبهی نیست که از جاروی او نهراست. دوباره دلگرم شدند و شراب سنگین نارل را سر کشیدند و دوباره جامهایشان را پر کردند و گوهیک را ستودند و دیر هنگام شب همه با هم برخاستند تا به خانه بازگردند و همه به هنگام رفتن کنار یکدیگر ماندند و ترانه های سنگین کهنی خواندند تا آن موجودات حراساور را بترسانند. هرچند جنهای سبکسر یا اشباه روشن خلنگزار کمتر به چیزهای مهم برای انسان اهمیت میدهند. به هنگامی که تنها یک نفر مانده بود به سوی خانه اشدوید و اشباه روشن خلنگزار دنبالش کردند. روز بعد که فرا رسید کارشان را زود تمام کردند چون اعضای شورای ارل نمیخواستند در هنگام فرارسیدن شب و یا حتی به هنگام سایه روشن غروب بر روی تپه جادوگر باشند. در اوایل بعد از یازده عضو شورا در بیرون کارگاه نارل گرد آمدند و نارل را صدا کردند و همگی لباسهایی پوشیده بودند که هنگام رفتن به جایگاه مقدس نجات دهنده برتن میکردند هرچند هر روحی که توسط نجات دهنده نفرین شده بود، توسط جادوگر تقدیس شده بود و با چوب دستهای ستبر از تپه بالا رفتند و تا آنجا که می توانستند زود به خانه جادوگر رفتند و او را نه پیرتر و نه جوانتر و بی تفاوت به آمد و رفت سالها یافتند که بیرون خانه نشسته بود و از فراز دره به دور دست ها با های رسمی در برابرش ایستادند و گفتند ما شورای ارل هستیم. جادوگر گفت آها شما حسرت جادو داشتید آیا سرانجام به سراغتان آمده است؟ گفتند به راستی و بی تردید آمده است. گفت بیش از این خواهد آمد. نارل گفت ننه جادوگر اینجا گرد آمده ایم تا از تو خواهش کنیم تلسم خوبی به ما بدهی تا در برابر جادو افسون کند تا دیگر بیش از این به دره نیاید چون بیش از اندازه آمده است گفت بیش از اندازه؟ جادوی بیش از اندازه؟ انگار جادو چاشنی و جوهر زندگی آرایه و شکوه زندگی نیست با جارویم هیچ تلسمی در برابر جادو به شما نمیدهم؟ و آنها به اشباه روشن سرگردان و موجودات ترسناک وراج و تمامی غرابت و پلیدی اندیشیدند که به دره اررشان آمده بود و دوباره معدبانه از او خواهش کردند. گوهیک گفت آه نن جادوگر راستی بیش از اندازه جادو آمده است و مردمی که باید در سرزمین پریان ساکن باشند همگی از مرز به این سو آمده اند. نارل گفت همین گونه است، مرز شکسته است و هیچ چیز جلودار این هجوم نیست اشباه روشن باید در خلنگزارها و جنها و دیوها در سرزمین پریان بمانند و ما مردم باید خودمان با خودمان باشیم این پندار همه ماست چون جادو هرچند در هر حال سالها پیش در جوانی آرزویش را داشتیم به مسائلی توجه دارد که از آن انسانها نیست جادوگر، خاموش و در حالی که درخششی گربه مانند در چشم هایش شد به آنها نگریست و هنگامی که نه سخن گفت و نه حرکت کرد نارل دوباره از او خواهش کرد ای ننه جادوگر آیا تلسمی برای حفاظت خانه هامان در برابر جادو به ما میدهی؟ جادوگر هیس هیس کنان گفت هیچ تلسمی نمیدهم هیچ تلسمی نبا جارویم و نه با ستارگان و نه با شب سواری می‌خواهید زمین را از میراث رسیده از زمان‌های کهنه‌اش پاک کنید می‌خواهید گنجینه‌اش را بگیرید و به رهن در سیاره های همکارش رهایش کنید به راستی که بیجادو بیچاره می‌بودیم بیجادو در حسادت تاریکی و فضای نامتناهی گرفتار خواهیم شد از جایی که نشسته بود به جلو خم شد و عصایش را بر زمین کوفت با چشم های بیلرزش در چهره نارل خیره شده بود. گفت من بیشتر حاضرم تلسمی بر علیه آب به شما بدهم تا سراسر جهان تشنه بماند. تا تلسمی بر علیه ترانی جویبارها که غروب به سختی از فراز تپهی می شنودشان و برای گوش بیدار بسیار دور است. ترانهی که به درون رؤیاها روان است. همان که از آن درباره جنگ های و عشقهای از دست رفته ارواح رودها می آموزیم. بیشتر حاضرم تلسمی بر علیه نان به شما بدهم تا تمام جهان گرسنه بماند تا تلسمی بر علیه جادوی گندم که تابستان حفرهای زرین محتاب را تسخیر می کند و موجوداتی که انسان در هیچ نمیداند در آن شبهای گرم کوتاه در این حفره‌های زرین سرگردانند می توانم جادویی بر علیه آرامش و لباس، غذا، پناهگاه و گرما بدهم. آری و راحتتر این کار را می کنم تا جدا کردن جادو از دشتهای بیچاره زمین تا راندن جادویی که برای آنها شنلی گسترده در برابر سرمای فضا و جامعی شاد در برابر ریش خنده است. پس بشه تابید به روستایتان بروید و شمایی که در جوانیتان جادو را جستجو می کردید اما اینکه پیر شده دیگر نمی خواهیدش بدانید که همراه با پیری گونه ای نابینایی روان فرا می رسد سیاهتر از نابینایی چشم و در پیرامونتان تاریکی می سازد که از میان آن هیچ چیز نمی تواندید یا حس کرد یا دانست یا از آن ترسید و هیچ صدایی از میان آن تاریکی نمی تواند من را وادار به اجرای تلسمی بر علیه جادو کند بروید و هنگامی که گفت بروید سنگینیاش را بر روی اسایش انداخت و آماده برخواستن از جایش شد و از این ماجرا وحشت شگرفی شورا را فرا گرفت و در همان دم دریافتند که غروب فرا میرسد و سراسر دره به تاریکی میگراید. هنوز بر این زمین بلندی که کلمهای جادوگر در میرویدند، رویدند، اندک نوری میتابید و هنگامی که به واجه های استوار او گوش میدادند به گذر زمان نگندی بودند، اما اکنون به روشنی داشت دیر میشد و بادی در کنارشان می که گویی از کمی دورتر از فراز لبه های دره میآید و گویی آب و هوا، در اختیار چیزی بود که آنها تلس می بر علیهش می و در اینجا و در این ساعت در برابر جادوگر بودند و او به وضوح می برخیزد. چشمهایش بر آنها دوخته شده بود. همان دم هم اندکی از صندلیش برخواسته بود. تردیدی نبود که دمی دیگر لنگلنگان و با چشم تابناکش که در چهره های همهشان نفوذ می کرد در برابرشان راه می رفت.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 قصرهای باشکوه و, و مهمانیهای بزرگ شاهانه قصههایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزادهها و شاهان با اصفهای تندرو و جادویی به سرزمینهای ناشناخته